گذشته و آینده این آزمایش را انجام دهید در یک حالت راحت بنشینید و به کف اتاق نگاه کنید حالا بدون اینکه حالتتان را تغییر دهید پنج دقیقه به زندگیتان فکر کنید به همه چیز و هر چیزی که برایتان مهم است فقط به زندگیتان فکر کنید همین حالا این کار را انجام دهید حالا ذهنتان را پاک کنید چند دقیقه در اطراف قدم بزنید و سپس بخش دوم آزمایش را انجام دهید. به همان حالت بنشینید، فقط این بار سرتان را بالا بگیرید تا بتوانید سقف را ببینید. پنج دقیقه به زندگیتان فکر کنید. به همه چیز و هر چیزی که برایتان مهم است، فقط به زندگیتان فکر کنید. همین حالا این کار را انجام دهید. نمیدانم شما به چه نتایجی رسیدید اما برای بیشتر مردم چنین اتفاقی رخ می‌دهد وقتی به پایین نگاه می‌کنید خیلی سخت است که درباره‌ی گذشته فکر نکنید هنگامی هم که به بالا خیره میشوید خیلی سخت است که درباره‌ی آینده فکر نکنید افرادی که بر روی منحنی شکست هستند تمایل دارند که روی گذشتشان تمرکز کنند و این کار آنها را پایین می‌کشد افرادی که روی منهنی موفقیت هستند روی آیندهشان تمرکز می کنند و این کار آنها را بالا می کشد. افرادی که روی منهنی موفقیت هستند گذشته را نادیده نمیگیرند، بلکه از آن به مسبه ابزاری برای ساختن آیندهشان استفاده می کنند. افرادی که روی منحنی شکست زندگی می کنند از گذشته همچون اصللح برای تهدید خودشان و اطرافیانشان استفاده می کنند. اینطور به نظر می رسد که بسیاری از مردم یک پایشان را در گذشته گذاشته اند و میگویند اگر فقط اوضاع متفاوت بود، من موفق می شدم و پای دیگرشان را در آینده گذاشتند و میگویند وقتی این اتفاق یا آن اتفاق بیفتد من شادمان و موفق خواهم شد. آنها زمان حال را کاملا نادیده میگیرند و از آن قفلت می کنند که البته تنها جایی است که عملا زندگی در آن جریان دارد. یکی از دوستانم میگفت مردم دو فهرست درباره همسرشان درست میکنند و آنها را در ذهنشان نگه می‌دارند. فهرست طولانی که یک بررسی مفصل درباره مشکلات و بدیهای همسرشان است و فهرست کوتاه که خلاصه ای از خوبی‌های اوست. آنها آن فهرست طولانی را هر روز کاوش و بررسی می‌کنند و فهرست کوتاه چطور؟ فهرستی است که آنها در مراسم ترحیم همسرشان می‌خوانند. افرادی که روی منهنی موفقیت هستند منتظر مراسم ترحیم همسرشان نمی مانند. آنها آن فهرست طولانی را پاره می کنند و هر روزشان را صرف خواندن آن فهرست کوتاه می کنند. آنها خودشان را در خوبی ها خبره می کنند و مشکلات و بدی را رها می کنند. آنها هرگز کینه به دل نمیگیرند البته نه به این دلیل که از لحاظ اخلاقی اشتباه است گرچه ممکن است با این دلیل نیز موافق باشند بلکه به این دلیل که واقعا مزاحم مسیر زندگیشان به سوی موفقیت است و حرکتشان را کند می کند. آنها آنقدر مشغول حرکت به سوی آینده هستند که وقتی برای خیره شدن به آینه وسط ماشین که همان فکر کردن به گذشته است ندارند یکی از سریعترین و مستقیم ترین برای بالا کشیدن خودتان روی منهنی موفقیت این است که از دام گذشته خلاص شوید. گذشته را بررسی کنید اما فقط برای این هدف که برنامه بهتری بریزید. آن را بررسی کنید و مسئولیت اشتباهاتی را که مرتکب شده اید بر عهده بگیرید و از آن به مسابه ابزاری استفاده کنید که در آینده به صورت متفاوتی عمل کنید. حتی زمان زیادی را نیز صرف آن نکنید، آینده نسبت به گذشته ابزار به مراتب بهتری است آینده قدرتمندترین ابزار و بهترین دوست شماست زمان و تلاشی جدی و متمرکز صرف کنید تا تصویر شفاف و روشنی را از جایی که به آن می‌روید طراحی تراهی کنید در انتهای این کتاب به شما کمک می کنم که دقیقا همین کار را انجام دهید الان فقط این را میگویم که وقتی تصویر واضح و شفافی از آینده داشته باشید و هر روز به صورت آگاهانه زمانی را اختصاص دهید که با آن آینده به سوی جلو کشیده شوید این موضوع شما را از هر گونه استکاک و سکونی که در زمان حال با آن مواجه میشوید یا هر زحمت و دشواری که ممکن است از گذشته احساس کنید رهایی میبخشد آخرین و بهترین چیز درباره گذشته و آینده این است که شما نمیتوانید گذشته را تغییر دهید بلکه فقط میتوانید آینده را تغییر دهید. ترجیح میدهید با چیزی تحت تأثیر قرار بگیرید که نمیتوانید تغییرش دهید یا با چیزی که میتوانید تغییرش دهید. به کجا می روید؟ همین حالا در کدام بخش از منحنی برتری خفیف هستید؟ در کدام مسیر حرکت می کنید؟ آیا یکی از آن پنج درصد هستید که روی منحنی موفقیت زندگی می کنند و بالا می روند؟ یا در میان اکثریت تسلیم شده و همان نود و پنج درصدی هستید که روی منحنی شکست هستند و به پایین سر می خورند؟ نمیدانید؟ مطمئن نیستید؟ گمان می کنید که شاید در جایی میان این دو مسیر باشید؟ نه، متاسفم، هیچ مسیر دیگری وجود ندارد. شما یا در حال بالا رفتن هستید یا در حال پایین آمدن. بخش آغازین هر دو منحنی کاملا صاف است بنابراین ممکن است اینطور به نظر برسد که در حال حرکت در امتداد یک مسیر مطلوب و مستقیم هستید و به سمت بالا یا پایین حرکت نمی‌کنید اما ظاهر می‌تواند فریبنده باشد و معمولا همین گونه است در جهان ما که همه چیز دائماً و به سرعت در حال تغییر است حقیقتاً نمی‌توانید در همان جای دیروزتان باقی بمانید شما در حرکت هستید و در این مورد هیچ حق انتخابی ندارید. اما حرکت در کدام مسیر؟ در این مورد کاملا حق انتخاب دارید. شما از نظر اعتبار شخصی و حرفه‌ای یا در حال پیشرفت هستید یا در حال نزول. شما یا به سوی شادی و رضایت بیشتر گام برمی دارید یا به سوی ناخشنودی و نارضایتی بیشتر. ارتباطات شما یا امیختر و قنیتر می شوند یا سردتر و غیر سمیمیتر. شما یا درباره حقایق زندگی بیشتر و بیشتر یاد می گیرید، یا در انکار حقایق زندگی عمیق امیغ و امیغتر فرو می روید. شما یا امنیت و استقلال مالی بلند مدتی ایجاد می کنید، یا آن را از بین می برید. اوضاع سلامتی شما یا روز به روز بهتر می شود، یا به آهستگی افول می کند. بنابراین اجازه دهید قبل از ادامه بحث ارزیابی صادقانی از وضعیت شما داشته باشم. و هر یک از هفت حوزه زندگیتان نگاهی بیاندازید و از خودتان بپرسید همین حالا در سلامتی، شادی، ارتباطات و بقیه موارد روی منحنی موفقیت هستم یا منحنی شکست این یک سوال دو گزینه‌ای است و جواب دیگری ندارد اجازه دهید نگاهی صادقانه به وضعیت سلامتیتان بکنیم آیا وضعیت سلامتیتان را هر روز بهبود میبخشید؟ آیا شیوه تغذیه نوع ورزش کردن و شیوه مراقبتتان از خود هر روز احساس بهتری از سلامتی و تراوت در شما ایجاد می کند؟ یا احساس می کنید که از حساب انرژی زندگیتان بیشتر و بیشتر برداشت می کنید و مانده حسابتان به صورت پیوسته کاهش می وضعیت سلامتی شما روی منهنی موفقیت است یا روی منهنی شکست؟ اجازه دهید نگاهی صادقانه به سطح شادیتان بکنیم. آیا هر روز زمانی را به چیزهایی که قدردان و سپاسگزارشان هستید اختصاص می دهید؟ عادت دارید نیمه پر لیوان را ببینید یا نیمه خالی را؟ آیا تمرین می کنید که از لحظه ی حال لذت ببرید و مراتب قدردانیتان را از دیگران ابراز می کنید؟ آیا مرتبا مجذوب فعالیت هایی میشوید که برایتان معنی دارند کارهایی که به دلیل اجبار انجامشان نمی دهید بلکه خودتان میخواهید که انجامشان دهید؟ آیا هر روز شادی بیشتری خلق می‌کنید یا شادی تان کمتر و کمتر می می‌شود؟ اجازه دهید نگاهی صادقانه به ها و ارتباطاتتان بکنیم. آیا تعداد دوستانتان، یعنی کسانی که با آنها در تماس هستید و با آنها مراوده دارید و اطلاعات و تجربیاتتان را با آنها مبادله می‌کنید، هر سال بیشتر می‌شود؟ اگر متأهل هستید و بخواهید زندگی تان را به یک نهال تشبیه کنید، آیا هر سال که می گذرد نحال زندگیتان بلندتر، بالغتر، پرشاخ و برگتر و باشکوتر می شود؟ خانوادتان چطور؟ فرزندان، والدین، برادرها، خواهرها و دیگران؟ آیا روابطتان عمیقتر و قنیتر می شود یا سردتر و ستیتر؟ حالا اجازه دهید نگاهی صادقانه به پیشرفت شخصیتان بکنیم. آیا هر روز درباره خودتان، دنیای اطرافتان و ساز و کار زندگی چیزهای بیشتری یاد می‌گیرید؟ آیا مهارت‌های جدید یاد می‌گیرید و مهارت‌های قدیمیتان را به روزرسانی می‌کنید؟ آیا شخص تواناتر، باصلاحیت‌تر و لایق‌تری می‌شوید؟ کسی که دیگران علاقمند به آشنایی با او و در کنار او بودن هستند؟ یا شخصیتتان به تدریج با خطوط ناامیدی، سرخوردگی، ملالت و تلخی حکاکی می‌شود؟ اما اجازه دهید نگاهی صادقانه به وضعیت مالیتان بکنیم. آیا برای خودتان سرمایه جمع می کنید و پولتان را در برنامه بلندمدت بلند مدت سرمایهگذاری می کنید که برایتان استقلال مالی واقعی ایجاد خواهد کرد؟ آیا ثروت خالصتان هر سال بیشتر می شود؟ آیا در حد سطح استطاعتتان زندگی می کنید و بخشی از درآمد را در سرمایه سرمایهگذاری می کنید که با گذشت زمان داراییتان را افزایش می دهد؟ سرمایه که از طریق قدرت بهری مرکب تکانش ایجاد می کند و توده مالی هنگفتی را برای سالهای آینده تان که بسیار نیازمندش هستید فراهم می آورد. یا با استفاده از کارت‌های اعتباری بدهی و قرض زندگی می کنید، حساب پس را خالی می کنید و به جای دارایی بدهی اندوخته می کنید و خودتان را عمیق امیغ و امیغتر در گودالی گرفتار می کنید که رهایی از آن سخت‌تر می شود. اجازه دهید نگاهی صادقانه به شغل و حرفتان بکنیم. آیا زندگی حرفیتان هر روز پیشرفت می کند؟ آیا در مسیری حرکت می کنید که شما را در حرفی انتخابیتان به سوی پیشرفت و رضایت سوق می دهد؟ آیا شغلتان نه فقط از لحاظ مالی بلکه از لحاظ احساس شما نسبت به خدمت رسانی به مردم رضایت شخصی و احترام در میان همکاران نیز رو به پیشرفت است؟ و در پایان، اجازه دهید نگاهی صادقانه به اثر مثبتتان بر روی دنیا بکنیم چه نوع تأثیری در افراد پیرامونتان دارید در نتیجه حضور شما دنیا چه تفاوتی کرده است بعد از اینکه این دنیا را ترک کنید چه چیزی را به ارث می‌گذارید و مردم شما را چگونه به یاد می‌آورند وقتی حرفتان و همه دستاوردهای هرفیتان، روابط و همه دستاوردهای شخصیتان و حس پیوندتان با طبیعت، انسانیت و خدا را با هم جمع کنید ارزش کلی یا معنای زندگیتان را چگونه توصیف می کنید؟ و آیا هر روز، هر ماه و هر سال این احساس قدرتمندتر، امیغتر و قنیتر می شود؟ زندگی یک جلسه تمرینی نیست هیچ تمرین پیش از نمایشی وجود ندارد، هرچه هست تماما همین است. زندگی واقعی و حقیقی است، بنابراین آن را سریح و بیپرده بازی کنید و با خودتان رو راست باشید. در زندگی هیچ آب راکد و هیچ حرکت در جایی وجود ندارد، همه چیز در حال حرکت است. اگر پیشرفت نمی کنید، قنیتر نمی شوید، بهتر نمی شوید و اگر هر روز به ارزش و اعتبار شخصی و هرفهی اضافه نمی شود، بنابراین در منهنی شکست هستید. در کسب و کارم، درباره موفقیت مالی بسیار زیاد صحبت می کنم، اما موفقیت حقیقی نسبت به موفقیت مالی محض موضوع به مراتب مهمتری است. زندگی موفق حقیقی به معنای موفقیت شما در سلامتی، شادی، ارتباطات، پیشرفت شخصی، حرفه و شغل، معنویت و احساس رضایتتان است و میراثی که بر جای میگذارید و اثری که بر روی جهان دارید. به معنی همه این هاست و البته چیزهای دیگر. بهترین نکته درباره موفقیت حقیقی این است که گسترش می‌یابد. مانند امواج سطح یک آبگیر حتی موفقیت های کوچک در هر یک از این حوزه شروع به اثرگذاری بر همه حوزه های دیگر می کنند. اگر وضعیت سلامتیتان را بهبود ببخشید، ارتباطاتتان را بهبود میبخشید. اگر روی پیشرفت شخصیتان کار کنید روی شغلتان اثر میگذارد، هر چیزی بر همه چیزهای دیگر اثر میگذارد. اگر برایتان سخت است که مثلا در یک حوزه مانند کسب و کار پیشرفت ایجاد کنید تلاش کنید تا یک تغییر مثبت کوچک در یک حوزه دیگر ایجاد کنید شروع کنید به پیاده روی در اطراف محل زندگیتان یا آن کماد پر از خرتوپرت و پرت را که ذهنتان را درگیر خودش کرده است مرتب کنید خواهید دید که احساس موفقیتتان در یک حوزه شما را برای ادامه سفرتان در دست یافتن به اهداف بزرگ دیگر آماده می کند. موفقیت در یک حوزه، موفقیت در حوزه های دیگر را به ارمغان می آورد کلیدش این است که از یک جا شروع کنید از هر جایی که می توانید اقدام کنید و شروع به خلق معفقیت های کوچک کنید تعلل نکنید، شما می توانید باقی زندگیتان را دگرگون کنید خبر خوب ساعت شش صبح زنگ ساعت به صدا در میآید. بدون هیچگونه فکری دستتان را دراز می کنید و دکمه تاخیر را می زنید. یک وقفه ده دقیقه ای به سختی یک پایتان را از زیر پتو بیرون میآورید. دینگ صدای زنگ بلند می شود یک چشمتان را باز می کنید، هوا هنوز هم تاریک است. حالا با یک انتخاب روبرو هستید. و این همان خبر خوب است. زیرا شما همیشه در هر لحظه با یک انتخاب روبرو هستید. جایی که همکنون در آن هستید، در زمان حال ثابت است. گذشته در پشت شما امتداد میابد و آینده در جلوی شما قرار دارد. در هر لحظه ای از زندگیتان، می انتخاب کنید که در کدام سمت منهنی باشید. شما نمی توانید گذشته را تغییر دهید، اما مطمئناً می آینده را تغییر دهید. آیا در حال بالا رفتن از منحنی موفقیت هستید یا در حال سقوط کردن از منحنی شکست؟ درست در همین لحظه، دقیقاً در همین نقطه از زندگیتان که روی دکمه تأخیر دست گذاشته اید، می توانید به هر دو صورت به این سوال پاسخ دهید. جایی که شما به سوی آن در حرکت هستید، لزوماً همان جایی نیست که چند دقیقه بعد یا بعد از کنار گذاشتن این کتاب یا وقتی که فردا صبح از خواب بیدار میشوید به سمت آن در حرکت خواهید بود. آینده همانند گذشته نیست در حقیقت همزمان نمی توانید در هر دو مسیر باشید شما یا می توانید پایین را نگاه کنید یا بالا را یا می توانید پشت سرتان را نگاه کنید یا پیش رویتان را یا می توانید در آینه نگاه کنید یا بزرگ راه روبرویتان را تمامی اطلاعاتی که برای موفقیت نیاز دارید در اینجا وجود دارد همه ما همین حالا اقداماتی را در زندگی انجام می دهیم همه یک کاری که لازم است انجام دهیم این است که انتخاب کنیم آن اقدامات در خدمت ما باشند و ما را توانمند سازند و این نوع انتخاب کردن را ادامه دهیم. در منهنی یا همان مسیر موفقیت قدم بگذارید و می بینید که با گذر زمان در هر حوضه از زندگی که بخواهید به موفقیت می رسید و این موضوع می تواند در کمتر از زمانی که تصور می کنید به وقوع بپیوندد. داستان‌های شخصی از خوانندگان کتاب چارلی ویگیل دکالب ایالت ایلینویز قبل از خوندن این کتاب توی زندگی پر از عیبجویی و سرزنش سرگردون بودم هیچ وقت هیچ مسئولیتی رو قبول نمی کردم، هیچ وقت اشتباه از من نبود و همیشه مشکل از یه آدم دیگه بود همیشه چیزی جز خودم بود که از موفقیتم جلوگیری کرد بعد از خوندن این کتاب فهمیدم که باید تصمیم مهمی بگیرم زندگیم روی مسیر شکست ادامه بدم یا اینکه تغییر کنم گاهی اوقات تو زندگی اینطور به نظر میرسه که برای تغییر دادن مسائل خیلی دیر شده حالا میدونم که هرگز خیلی دیر نیست اما باید از یه جایی شروع کرد به خودتون بستگی داره که عمیقا کاوش کنین به مسائل گذشته نگاه کنین و تلاش کنین که فقط با برخی تغییرات ساده در آینده بهتر باشین کاراکولی، نیویورک. بازیگر زن که باشی، بسیار ساده با مسائلی که در این حرفه رقابتی پیش میاد در هم میشکنی کتاب برتری خفیف به من کمک کرد تا متوجه بشم انتخابای کوچیکی روزمره تأثیر بسیار زیاد و شگرفی تو زندگیم دارن. ما تو جامعه زندگی میکنیم که تاکید بسیار زیادی بر موفقیت میشه. کتاب برتری خفیف به تعریف دوباره از موفقیت پرداخته. این کتاب به من کمک کرد تا گام های روبه جلو تو زندگی روزمرن بردارم و کارهای درستی انجام بدم. می‌دونم که اون گام ها سرانجام به زندگی موفقیت و رضایت بخشی منجر میشن. من بیشتر موفقیتم و مدیون به کار بستن اصول ساده‌ای هستم که تو این کتاب بیان شدن. میشل سوپکه، تاکوما، ایالت واشنگتن. ایتیاد به الکول، ذره ذره خوبی و مهربونی ما از من گرفت. خوشبختانه سرنوشت برنامه بهتری برام داشت. من تصمیم به مبارزه گرفتم و توی یک کمپ درمان از راه دور نام کردم. تو همون زمان اتفاق مثبت دیگه هم به وقوع پیوست. با کتاب برتری خفیف آشنا شدم. اصول سادهی که تو این کتاب شهر داده شده بود، وحی مطلقی برای من بود. با پی بردم به این موضوع که چگونه اجازه داده بودم تا بدترین دشمنم جادوی برتری خفیف و بر ضد من به کار بگیره تونستم کامهای کوچک مناسبی بردارم که برای تغییر منحنی زندگیم تو جهت مثبت لازم بود امروز آزاد و خوشحال هستم صبح با انرژی از خواب بیدار میشم و میدونم که برای رسیدن به اهدافم باید کدوم قدم‌ها رو بردارم حالا تو مسیری قدم برمیدارم که منو به رضایت و خوشنودی هدایت میکنه نکات مهم همه چیز همواره در حرکت است هر روز و هر لحظه زندگی شما یا در مسیر روبه بالا یا در مسیر روب پایین در حرکت است در فرایند بزرگ شدن ما پنج برابر بیشتر از کلمه بله کلمه نه را می شنویم زندگی یک نیروی کششی به پایین دارد افرادی که روی منهنی موفقیت قرار دارند در زندگیشان مسئولیت پذیرند. افرادی که روی منحنی شکست قرار دارند با عیب و سرزنش کردن زندگی می کنند. افرادی که روی منهنی موفقیت هستند با نیروی آینده کشیده می شوند. افرادی که روی منهنی شکستند با نیروی گذشته کشیده می شوند. اهمیتی ندارد که کجا هستید. در هر لحظه ای می توانید انتخاب کنید که قدم به منحنی موفقیت بگذارید.